خیلی ممنون موشکر خب بعد از بررسی نمودارها برگردیم سراغ کالبوتها یه توضیح کلی بدم منظور از کالبوتها چی هست؟ چون که خب دنیا علم هنوز با کالبوتها آشنایی نداره هرچند که تونسته عکس برداری بکنه از ها و اینها تونسته اکش برداری بکنه و حتی تپ نوین رو پای گذاری بکنن چون الان تپ نوین از بررسی حاله ها برداری از حاله ها به سلا رو تشخیص میدن اما دقیقا اشراف ندارن که کالبود ها چی خب یعنی الان همین الان هم در تهران دستگاه عکسبرداری برداری از حاله رو هست و در دنیا که خب اصلا این چیز دیگه بسیار جا افتاده هست وجود منظور از کالبود ذهنی ببینید اولا ما یه کالبود فیزیکی داریم و تعداد کالبود های مختلف که نقش های مختلفی دارن اینا وقتی باهم کامپکت میشن میشن چی؟ یه ظاهر من اگر عکس برداری هم از من بکنن میبینن که دور من هم خب یک چیزی وجود داره یه حاله وجود داره اما عکسبرداریهای دیگر رو هنوز نمیتونن بکنن چون این ادامه داره این همینجا خاطمه پیدا نمیکنه خلاصه ماجرای انسان ماجرای عجیب غریبیه خب حالا اینه که اینجا کمپکت شده و به صورت حاله و اینو عکسبرداری میشه کالبوت‌های مختلفی هست که در هم ادغام شده کمپکت شده خب کالبود ذهنی که هفته قبل با هم اشاره کردیم دیدیم از کالبود جسمی ما مهمتره یعنی بخش اصلی تری هست و اگر کال ذهن نباشه جسم مثلا به دردی نمیخوره و بخشی که بعد از این زندگی هم بعد از مرگ به زندگی ادامه میده این بخشی حالا این موضوعی است که جداگانه سعی میکنم یه توضیح خدمتون بدم در مورد کالبود ذهنی بخشی است که ادراکات ما رو مکشوب میکنه همه ادراکات ما درک ما از هدشیزی در ذهن انجام میشه در کاربود ذهنی ذهن گفتیم با مغز متفاوت مغز سنسورهایی داره این سنسورها ها اطلاعات رو میگیرن مخابره میکنن زین زین برمیگردونه مغز اونو به زبان پیزیک ترجمه میکنه خب حالا یه چیزی هم میکشم که به این موضوع کمک بکنه در واقع ببینید به این صورت صحبت کنیم وقایه و حوادث توسط گیرنده های مغز چی میشه؟ دیده میشه میاد از یک چارچوب عبور میکنه کارمون حالا با این چارچوب الان فیدن حلال حساب نباشه میاد واکنش ذهن میاد واکنش روان میاد واکنش مغز میاد واکنش واکنش جسم خب اینجا یه چارچوبیه که دورسته راجبش صحبت میکنیم همونه که گفتیم حوادث از اینجا رد میشه گیرنده های مغز خب حواس پنجگانه بودیم چی از اینو میگیره از اینجا رد میشه اینه که تعیین میکنه ما ایست قلبی پیدا بکنیم یا نکنیم قیمت مغز یعنی است که ارتباط برقرار میکنه بین حوادث و فیزیک. اینه که رابطه بین قیمت دلار و کارکرد قلب ما هست ظاهرا هیچ رابطه نیست درسته؟ اما اینه که تعیین میکنه که قیست قلبی اتفاق بیفته یا نیفته آدرنالین ترشو بشه یا نشه کم بشه یا نشه الان اگر یه صدای انفجار بیاد هممون به یک نسبت میترسیم پس هممون به یک نسبت آدرنالین ترشو نمی‌کنیم پس ما دو دو تا چهار تا نیستیم اگر این مغز ما صرفاً بود الان چیکار می می‌گفت اگر این آنگا آن انفجار شده هممون باید به یه نسبت بترسیم ولی یکی نمی یکی, یکی. خب اینجاست که میگه میزان شدت و ضعف حوادث چقدره؟ خبر مرگی خبر ناگواری میاد اینه که میگه قش صورت بگیره یا نگیره یا عادی باش یا نباش دور سه راجع به این بحث مفصل صحبت داریم بعد از این که عبور میشه تذیه و تحلیل ذهنی شروع میشه یعنی ادراک ما از اون حادثه چیه خب این اصلا قبل از اینه که ما هیچ چیزی داشته باشیم فلبده های یعنی یک صدا امپیجار بیاد ما وقت نکردیم که اصلا راجع به موضوع ادراکی داشته باشیم خب یه لحظه وقتی تلفن رو میگن قیمت دلار اینجوری شد ما اصلا وقت تجزیه تحلیل پیدا نکردیم حالا این نرم افزار و ما برنامه ریزیش میکنیم به یه صورتی اینها برنامه ریزی های قرار میگیره خب و روش فیدبک هایی صورت میگیره مثلا انفجار اول تعیین میکنه که ما چقدر به یه انفجار دیگه رخ بده تعیین میکنه این بیشتر بشه یا کمتر بشه. مثلا انفجار دهم میشه می که ما اصلا به رو خودمون هم یاوردیم اصلا نگام نکردیم بر نگشتیم. درست شد یا نه این شدت و ضعف است که شدت و ضعف مسائل رو تعیین میکنه و افزار قدرتمتمنددی است حالا رادیش صحبت های مفصل داریم. خب بعد از اینه که اینجا که عبور میشه تازه ما، واکنش ذهن ما میگه که درک ما از اون پدیده از اون پدیده چطوریه چی باید باشه خب یه پدیده از اینجا اتفاق میفته ادراک ما میگه که بسلا باید احساس منفی نشون داده بشه. بعد از این نوبت احساس میرسه این احساسه ادراکه و بعد از این مغزه که میاد تولیدات شیمیایی داره مثلا دوپامین، فلان میشه سروتونین بیشتر میشه انکفالтин فلان میشه بعد نتیجه این واکنش مغزی بعدن میاد میشه مثلا فرض کن افسردگی خب حالا یک بیمار ابسورده اینجا تعادل دوپامین به هم خورده ما در دنیای مثلا داروسازی میام چیکار میکنیم از اینجا میگیم این تولید شده خب ما اینو میزنیم این اونو خنثا میکنه اثرش نمیذاریم رو جس پیاده بشه خب موافق میشیم هی باید از اینجا بزنیم. هی بزنیم اون تولید میکنه ما هی میزنیم اون تولید میکنه ما هی میزنیم درست شد یا نه هر روزی هم که قطع کنیم دوباره همون آشو همون کاسه نگو این دستورشو خودش نیست مغز نیست که تصمیم میگیره که نمیدونم ای این کارو بکنه اون کارو کنه این دستورشو از این گرفته این دستورشو از این گرفته این تابع اونه خب الان ببینید ما اگر نتیجه گرفتیم که حالا تا پایان قضیهمون افسردگی تحصیل پذیر هست ما که دست نزدیم اینجا ما کجا دست بردیم خب ما اینجا دست بردیم این هم که یه ماجرای داره اینجا رو فیلن علال حساب اینجا رو دست بردیم چجوری؟ با هوشمندی اون پیوند هوش جز ازا ما اینجا دست بردیم بدون اینکه چیزی استفاده بکنیم تونستیم چیکار کنیم؟ اینجا جواب مطلوب بگیریم اینم به جسب جواب مطلوب بده. حتی خود ترمیمی داشته باشه، حتی خود خب یعنی در واقع همه چیز به نفع به اصطلاح مجموعه کار چی بشه؟ وارد قضیه بشه. الان اون کسی که داریم اینجا و افسردگیش الان آمار گرفتیم میگه بهتر شده؟ خب 100 درصد باید چی شده باشه؟ تولیدات شیمیای مغزش هم عوض شده باشه دیگه باید دوپامینم هم نیمتونم فلان شده باشه قبول دارین یا ندارین؟ ولی ما که کار شیمیایی نکردیم که درست شد یا نه؟ بنابراین موضوعاتی که اینجا وجود داره ما بقش داریم که غیر از مغزه و تازه خود مغز دستور میگیره مغز تعریفش از نظر ما مجموعه ایست از آنتن‌های مختلف خب این آنتن‌های مختلف بستگی به سری مسائلی هر کدومش میاد تو مدار از تو مدار خارج میشه مثلا من این مثال بزنم کسانی داریم که رنگ‌های دیده باشن تو این ارتباطات که رو زمین اون رنگها وجود نداشته باشه یکی دوتا تا سه تا چهار تا خب و داریم درست شد یا نه این رنگ‌ها رو زمین وجود نداشته مغز ما هم براش تعریفی نداشته ولی به معنی اینکه برخورد میکنه بخشی از مغز که تا امروز فعال نبود میاد تو مدار این رنگ برای اولین بار مورد شناسایی قرار ده کسانی داریم که آگاهی گرفته باشن آگاهی دریافت آگاهی چند نفر داریم خب ما سنسورهای فراذهنی داریم اونا آگاهی دادن مغز ما آگاهی یعنی یه اطلاعاتی بگیریم از ماورا الهام الهام. خب ششم نه. حالا مغز میگن میشندی که ما از چند درصد مغزون استفاده میکن. چند درصد؟ حالا یه درصد دو درصد سه درصد چه درصد برقیش پس چیه؟ بقیش مربوط به این برخش ها میشه که ما هنوز. اونو به خدمت نگرفتیم و هر وقت که بگیریم اون بخش ها میاد تو مدار میاد تو مدار قرار میگیره یعنی وجود ما تعریف شده همه نرم ها رو این رو ریخته شده خب ولی دلیل نداره چون این رو ریخته شده منم استفاده دارم میکنم خیلی چید که ازم به دردمون نمیخوره برای این رو هست تا زمانی که ما این مدار ها رو از این طریق به خدمت بگیریم لذا مغز از نظر ما تعریفش تعریف خاصیه خب حالا کار کالبودای دیگه کالبود ذهنی بخشی است که ادراکات ما ادراک داریم کار اینجاست نه کار مغز نورون که نمیتونه به من بگه از این ور بر برو یا از این ور بر برو اون اتماسیون درونی رو در داره کنترل میکنه زربان قلط فلام خون چربی خون قند خون نمیدونم همه رو داره به صورت زیر نظر میگیره که واقعا هم کارش بسیار حیرت انگیز خب حرکات روده روده یعنی به رگا که حالت ارتجاعیشون کنترل بشه چی بشن تمام اینها به طرز بسیار حیرت انگیزی توی یک مدار اتوماسیون قرار دارند ولیکن یه سری بخش دیگه کار مغز نیست در مورد پس این ادراکات اینجا احساسات اینجا ترجمه است که از مجموعه کالبود های مختلف انجام میشه حالا یکی از کالبود که میخوام اینجا امروز صحبت کنیم کالبود اختری نقش غیر مستقیمی داره پیوستگی حرکات ما پیوستگی حرکات حالا یه بحث رو شروع میکنیم بعد از این ماجرا پس در واقع مکانیزم بهبودی که در اینجا رخ میده ببینید ما هیچ مداخله کمی و تخصصی نداریم درسته بنابراین اصلا کار خودمون تداخل و مداخله نمیدونیم مثلا در کار در کار پزشکی ازن کار خودمون مداخله نمیدونیم درسته چون ما هیچ تداخل کمی نکردیم که ما از دور دستمون رو تکون بدیم این میشه مداخله بشکن بزنیم این میشه مداخله بله میشه مثلا ما هیچ چیز تداخلی رو قبول نداریم که به ما بگن ما میگیم که ما احل بشکن و بالا بنداز هستیم اونم که میتونید جرم نیست خب؟ و اونم تداخل نیست مداخله نیست خب؟ و در واقع من بشکن میزنم اون از دور خارج نیست. یا میگه این اصلا تاثیر نداره درسته یه حرفی میگن که آقا اصلا این چیزا نیست تاثیر نداره میگیم قول آقا تاثیر نداره دیگه من واسه خودم بشکن میزنم درسته شما چرا ناراحتین یا میگه تاثیر داره تا بگه تاثیر داره میچشو میگیریم میگیم گفتی تاثیر داره دیگه بیا جلو حالا که تاثیر داره خب ث داره بگو چه تاثیری داره اعتراف کن که پسیر تاثیری داره. لذا یه مسئله اگه بگه تاثیر نداره میگیم خود تاثیر نداره دیگه چرا نحتی من بشکل میزنم. درست شد اگر هم بگه تاثیر داره میگیم پس بیا با هم تحقیقات کنیم. خب بیا با هم تحقیقات کنیم ببینیم این تاثیررش از کجا رخ میده چرا آزی نیست تئوری منو بوش بدید؟ بیا تئوری رو با هم بررسی بکنیم. درست شد یا نه لذا. این مسئله که اینجا هست هیچ تداخل کمی و تخصصی توی این قضیه وجود نداره و کاری که اینجا صورت میگیره کیفیه خب حرکتی که ما انجام میدیم حرکت کیفیه حرکت کیفی اون بخ اینجوری میشه که شما میتونید بدون محدودیت کار بکنید و حرکت کیفیه که در واقع تغییر برنامه نویسی افزاری است اینجا تغییر برنامه ریزی است و اینجا اثر که بگیره دستور که به این میده و اینجا به انتحان میرسه این تغییر میکنه میگید نه؟ بید با هم آزمایش بکنیم خب اساس قضیه همینه که این آزمایش ها رو در واقع انجام بدیم اما میخوایم حالا راجع کالبود اختری میخوایم صحبت بکنیم بعد از اینه که کالبود روانی و نمی‌دونم ذهنی را شناختیم در مورد کالبود اختری می خواهیم صحبت کنیم اینا همون که الان علم اکسشو مندازه ها یعنی دیگه اگر کسی بیاد بگه اینها نیست حرف غیر علمی زده ها اینو یادتون باشه اگر جایی به شما گفتن اینها نیست بگین که کاملا از علم روز چی هستین؟ جدا هستین، همین الان در همین تهران دستگاش هست، اکسشو میندازده بیماری کنی بله، خب، حالا بنابراین، البته یه ادهی خبر ندارن ها متاسفانه، هنوز یه ادهی از دنیا علم، از علم امروز خبر ندارن که مثلا تپ سوزنی الکترونیک داریم واسه تپ نوین داریم که تشخیص بیماری ها داره اصلا عوض میشه روندش دیگه تشخیصه نیست از روی حاله و رنگ و نمیدونم تیپ سنجی حاله‌ها حالا من اینجوری اسم می‌ذارم تیپ در واقع تشخیص به اصطلاح اشکالات رو میده از روی حرارت بدن ببین اینا تیپ نوینه از روی حرارت بدن یعنی تیپ سنجی های مختلف از روی که اصطلاح فرکانس سلول سایمتیک تراپی اکثر دوستان ما متاسفانه خبر از علم روز دنیا ندارن یعنی حتی زحمت این که زحمت بکشن برن روی سایتی یه سری چیزا رو سرچ بکنن و ببینن که در دنیا چه خبره متاسفانه این زحمت رو به خودشون نمیدن و بحث مثلا انرژی درمانی رشته اکادمی که در دنیا رشته دانشگاهی از پولاریتی درمانی من حالا باز اگه وقت با بردیم راجبش یه خورده صحبت بکنم که اساس علمی شیه پولاریتی تراپی خوب رشته دانشگاهیست در دنیا اینه که دست بکشین درمان صورت علم علمه علمیست خوب و با پیزیک با پیزیک ارتباط داره با چی ارتباط داره من اینو بگم بعد که وقت بشه راجبونم صحبت بکنم خدمتون جارم جان. بله حالا به هر صورت اینا همش، چون اون اطلاعات رو در واقع میشه داد و بله این چیزها رو کامپیوتری بشه و طب نوین به صلاح الان در دنیا وجود داره حالا اگر که ما بیخبریم خب اون یه بحث, یه بحث دیگه ایست ولی با به صلاح انکار خرشید که خورشید که محب میشه که این یک واقعیت روز دنیاست و سازمان بهداشت جهانی همون تون تقسیمندی که خدمتون دادیم اینا رو تقسیمندی داره بوجه داره براش نمیدونم تحقیق داره و حالا همه این مسائل بگذریم از نظر ما این اطلاعاتی که خدمتتون میگیم صرفا مختص خودمونه در جای نیست همین هم باعث شده که همین منابعمون کتابمون اینا بمونه به خاطر اینکه رفرنس نداره کار بود اخداری دو تا وظیفه مهم داره یکیش هدایت رشد آناتومیکه یعنی یک نطفه که تشکیل میشه تا زمانی که به انتهای رشد میرسه و بعدا هر زمانی رشد آناتومی بحثش هست و نیاز هست هدایتش با این کالبوده یعنی این کالبود صرفاً محصولتاش هدایت است. هدایت رشد آناتومی هدایت پیام های عصبی در مورد هدایت پیام های عصبی که بحث جالب و تز جدیدیست این تز جدید در واقع بی سابقه است و دنیا علم ازش خبر نداره ما سیستم عصبی ای داریم. یه سیستم عصبی اولیه شامل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و ایناست. سیستم اعصاب سانویه به این صورته که وقتی پیام‌های در درون جاری میشه، این بخشی آناتومی داره که دوباره به تک تک سلول ها انشعاب داره. همون عکسایی هم که میبینیم در واقع اگه بتونیم بزرگ نمای باشیم بشیم که همش رشته رشته رشته رشته است و بی‌نهایت رشته، حتی تریلیون الا حدود رشته هست به تک تک سلول ها پیامی که جاری میشه به تق... اون سلول ها مخابره میشه که شما پیام عصبی دارید پیام دارید خاصیت این قضیه چیه یا مثلا اثبات قضیه چیه شما وقتی افراد اعضاشون قد میشه تا مدتا حدود و سقور و دستشون و تکونشون و چیزشون متوجه میشن در حالی که اون عضو وجود نداره بعضی از حرکات که انجام میشه از نقطه نظر محاسبه زمانی سریعتر از اون چیزی است که ما صحنه رو ببینیم مغز تصمیم بگیره جاری بشه به عض عمل کنه مثلا فرض کنید در ورشگاه رزمی مثلا فرض کنید در شمشیرزنی ژاپنی یا اصولا در شمشیرزنی صدام ثانیه یعنی مرگ و زندگی صدام ثانیه یعنی گردن رفته. و در ورزش رزمی اصولاً یک تعلیمی هست که فکر نکن حس کن خب یعنی چی؟ یعنی این عضوی که میخواد این ضربه جواب ضربه شمشیر رو بده این خود دسته که باید خودش حس کنه خود جواب بده خب مگر این دست ما مغز داره مگه میتونه خودش تصمیم بگیره ولی سرعت ضربات، شتاب ضربات و شتاب حرکات اینا به قدر سریعه که از نظر علمی نمیشه پاسخ گفت که تو این فاصله چشم دیده، مرد تصمیم گرفته دستور داده، دستور مناسب داده و همینه در این خصوص سیستم عصبی سانوی است که در واقع فعال هست و این سیستم است که فعاله من را دوباره قبل از این بحث رو ببرم جلوتر یه مثال میزنم ببینید ما وقتی که پامونو رو میزنیم رو زمین سنسور کف پا باید اطلاع بدن که ما جای محکمی داریم برس اینجا ما قدم بعدی رو برداریم دوباره همینطور دوباره همینطور. لذا ما باید حرکاتمون چی باشه؟ بریده برده باید باشه یعنی یه روبوت ما بخوام تهرائه کنیم همینطور میشه باید یه سنسور اونجا دارد بذاریم یعنی دام چه کاره بکنیم خب وقتی صحبت میکنیم این صحبتی که میکنیم اگه یاد باشه تو مدیریت زن در مدیریت مثلا زن یه بخشی داشتیم مدیریت حافظه یه بخشی داشتیم مدیریت حافظه این واژه ها رو انتخاب میکرد. این چی دمان میکرد یعنی مثلا یه تلفن بانک زنگ بزنید میگه که موجودی شما مبلغ یک میلیون و چیو چیو چیو اینا رو هر کدوم از یه جا میکشه بیرون و شما بینه که یک وقفهی بنه این صحبت ها وجود داره اما در مورد ما نه در مورد حرکاتمون و نه در گفتارمون بریدگی وجود نداره پیوستگی حرکات ما چگونه صورت میگیره؟ این فیدبک اگه قرار باشه ما پاون بذاریم این سنسور بیاد به این صلاح جوابش برسی اینجا چقدر زمان میخواد از نظر علمی بین یک دهان تا سه دهم ثانیه این رفت و برگشت ها زمان میخواد پس ما باید هستیم تا این بیادو برگرده ما یه زمان قابل توجه باید باشه و ما باید حرکاتمون بریده بریده باشه چرا نیست؟ چون فید این ماجرا مخابراتیه خوب و ما یه سری کارهامون مخابراتیست و لذا به سلا در وضعش رزمی یک سری حرکاتی که بسیار انقدر بسیار سرعت داره افراد مثل این بخش سیستم عصبی صانویتشون بدونی که خودشون بدونن تقویت شده ممکنه شما بفرمایید که نه یه سری حرکات هست که ناخودآگاه انجام میشه مثل مثلا فرزن در مورد حرکات مثل رانندگی مثل تایپ اینا در ناخودآگاهی انجام میشه میکانیزمش هم طبق یه قضیه که هست که اوتوماسیونی که در ناخودآگاهی هست حافظه ناخودآگاهی داریم و این حرکاتی رو که ما میخوایم انجام بدیم به اون حافظه سپرده میشه یعنی بار اول که خواستیم تایپ کنیم انگشتمون اولین حدفی رو که پیدا کرده یه دقیقه طور کشیده بعد بعد بعد بعد, بعد همین جاها به اون حافظ ناخداغای سپرده شده و بعد از اون دیگه به صورت اوتوماتیک چون دامنه حرکات محدوده به ناخداغای سپرده شده مثلا رانندگی همینطور تمام کارهایی که توی خط تولید انجام میشه و مشخص و ثابت همینطور از اینجا مهارت تعریف میشه مهارت اون چیزیست که این بخش میتونه رو چیکار بکنه حرکاتشو تعریف کنه اما در مورد شمشیر زنی ژاپنی ناخوداگان نمیدونه که این زربالان از کجا میاد ولی در مورد رانندگی میدونه گوشو تنظیم کرده با صدای موتور صدای موتور از حدی میاد اتوماتیک ما دستمون میره دنده رو عوض بکنیم یا دنده معکوس میدیم یا دنده بدونه که فکر کنین گوش ما داره با صدای موتور با سرعتمون با همه چیز اینو چیکار میکنه تنظیم میکنه ولی درمانه که شمشیز زنی هست ما که نمیدونیم الان 360 درجه این ضربه حریف از کجا میاد میدونیم لذا ناخداغایی نمیتونه در این موارد چیزی رو به خاطر بسباره و برنامه از قبل تعیین شده داشته باشه ولی در مورد تایپ میتونه در مورد کارهای خط تولید میتونه مثل بستبندی مثل می‌دونم چی در اینجا در واقع این افراد با مثلا کاری که انجام میدن سیستم عصبی صانویه رو میرن تو مدار دیگه به جای این قضیه اون یکی انجام میشه که در آن بدون مثلا صرف زمان چی میشه تقریبا این کار مثلا انجام میشه و شما از این سیستم استفاده کردید اون که دست گرفتید یک کانال را انداختید اومد تو بدن کسی با افراد فلج کار کرد تونست کسی با افراد فلچ چی بود نتیجه کار؟ خب به سلام در حرکاتش شد تو هیچ وقت حس نداشتم توی پاک توی پاک از راه دور بله دور هم دور هم دور هم. ببینید حالا شما از این مسئله دوستان که از این بحث شک و کانال رو اینا استفاده کنن در واقع دارن از این استفاده میکنن. و اگه یادتون باشید مثلا گفتیم برای بیماره MSC چهار تا کانال کار بذارید یکی از این پا یکی از این پا یکی از این دست یکی از این دست. تا مغز یادتون هست که حالا الان میگی مثلا فرزند در مسائل مشکلات نخواهی حرکتی شما حالا راه دور هم میشه کمان که اینجا شد یعنی راه دور خودش اتوماتیک انجام میشه اما راه نزدیک برای تست و تحقیقات شما شما میتونید چگاه کنید همون این پار رو میگیرید کانال اون پا رو میگیرید و این دستونه که مشکلات لیده که نخواد ناقت نخواد مثلا نخاش قطعه ولی این گریان رو بهتون گزارش میده سرما و گرما شو گزارش میده نمیدونم حتی دردشو گزارش میده که شما این که نمیتونه اینجوری بشه پای چطوری میشه اینها رو این کانال ها که کار گداشته میشه سیستم عصبی سانبیه الان تو مدار قرار میگیره و فرد به سلاح میبینه که مثلا پس کن توانایی حرکتیش خوب از این تغییر کرده و حالا تا ترمیم ها و مسائلی که به رخ بده بنابراین سیستم عصبی سویه سانویه که از معقولاتیست که علم آشنا نداره گفتیم خدمتون و میریم که با امید خدا با بالاخره نمیدونمی تحقیقاتی بتونیم اثبات کنیم که این سیستم وجود داره بدون این سیستم اصلا ما پیوستگی حرکت نمیتونیم داشته باشیم. پیوستگی، حرکت و پیوستگی، گوتو آب، پیوستگی، مختلف رو نمیتونیم داشت باشیم. اون که کار میکنه تو برقرار بقیه را میکنید کار خاصی ببینید که چه کار روش انجام میشه، حالا پیوستگی داره این که چه مشکلی باشه. ولی در این خصوص چیزایی رو که در این زمینی میتونید کار بکنید، اگر مخصوصاً اون بخشایی که مشکلات سیستم نخایی و عصبی و اینها وجود داره میتونه به نه و احسن کمک بکنه مثلا خب با خیلی از MSCI کار شده و این افراد به سلا تأثیر پذیری اومدهی رو در این بخش براشون پیش میاد که سریعا مسئله حرکتی ایناشون را میفته و بعد اگر از اینها بخوایم که اینها این سیستم رو زیر نظر بگیرن یعنی کانال هایی رو که زده میشه یعنی تو ارتباطات بشینن و نگاهش کنن یعنی زیر نظر بگیرنش خب پیشرفت قابل ملاحظهی پیدا میکنن و حالا تا ترمیم ها که سر فرصت ببینیم که چه تغییراتی میکنه ببینید به طور کلی در یک لحظه کارهایی رو که در هر ناحیه سلول ها نیاز داشته باشند بهش مثل فرکانسی که در حد نوره فرکانسی که در حد صوته و سرما، گرما، عاش های مختلف مادون قرمز باشیددم چی باشه؟ چی باشه؟ چی باشه؟ اثراتش رو اون سلول می اون کارو انجام میده. بعد چه جووری گزارش میده بعد نگه گرم شدم سر شدم شنیدم نور دیدم اینجوری شدم. تمام این چیزها دیگه پیامدهای اون ارتباط و کارش که اون ارتباط میخواد در واقع پیاده بکنه. درست شد. خب این مسئله حله یا حل درست شد یا نه یعنی ارتباطه کلی اما این بخش که من صحبت میکنم خدمتون چون میخوام مشخصا شما تست بکنید این تبکیکا پیش میاد میخوام مشخصا افرادی رو که اون مسئله دارن مشخصا شما تجربه بکنید این برای ما اهمیت داره از نظر که شما شناخت پیدا بکنید و ببینید که این سیستم عصبی ساانوی وجود داره یا وجود نداره. این رو جدا جدا در واقع میخوام تست بکنید و بدونید که چجوری خب در این خصوص که سوال هست حل دیگه متوجه شدیم چی به چیه؟ یا نه؟ نرم ابزاری است که بازم خودش قسمتی از بسلا نه مغز که نه. اینم باز خودش قسمتی از بسلا ذهنه. یه نرم افزاری است که ورودی ذهن است حالا ما گفتیم که گفتیم که سن و مرگ داریم سن و مرگ گفتیم داریم مرگ نامحسوس چرام بنده دارم خدمتتون همینو گفتم که برید کار بکنید ببینید که میشه یا نمیشه برید ببینید یه کسی که نخاش از سه جا لیدگی داره میتونین روش تاثیر بذارید یا نمیتونید کسی که ام اس داره اعصاب در نقاط خشکیده پوشش مایلین عصب از بین رفته خشکیدگی داره قطعی داره خب وقتی قطع میشه میسید برق دیگه قطع میشه دیگه چیزی برید ببینید میتونید تاثیر بذارید یا نمیتونید بذارید حالا به هر جور مشکل حرکتی موندی دامچی حالا ام اس هم که مشخصاً پندس بردم خدمتون برید ببینید اونایی که <تصفح> هم. مثل خودم <تصفح> ببینید راجب اونا گزارش نخواستیم اونایی که عقب افتاده هستن سندروم دام نمیدونم چی داری که شما کار میکنید اطرافیان به شما گزارش میدن خود اونها درزا نمیدونن چیه و شما یه درصدی حالا طبق تجربه من که با بعضی کار کردیم و نمیدونم پیش اومده یه درست درست درست در بیست درصد گزارشات مشهود رو خواهید داشت لاعقد یعنی اونا گزارش میدن که اینا یه کارایی رو نمیتونستن بکنن حالا میتونن انجام بدن یه چیزای توانایی رو نداشتن حالا دارن در تغییر رو ما تجربه شد داریم در مورد حقابانده های ذهنی و نمیدونم اینها این, این چیزا رو دارید کار بکنید تجربه بکنید فقط گفتیم نگید میشه یا نمیشه این هم میشه اون هم میشه هر موردی رو شما کار بکنید خب حالا خب یه من در درموگاه با بایی کبان بود یه بچه این فراجه آخرین کلمه آدمو میشین مثل کوچیتو شاید یه شبانه روز تا وقت به خواب اینو فکراتی کرد بیشتر از این مغزش کار نمی‌کرد بعد تو تکی که من میرفتم این مدام میومد و میرفت حالا بچگی نه اقتدارش بده ولی دیگه ازش می‌پرسیم اسمش چیه میتونست بگه یعنی بعدش تجزیه و تحلیل می‌کنه که این داره من چه سوالی می‌پرسم و من چه جواب باید بدم بله ببینید در واقع یه اینجور تاثیراتی رو مشهوده یعنی میتونیم داشته باشیم در بیشتر افصد ما تجربه کردیم میدونیم داریم حالا دیگه بیشترش رو شما تحقیقات بکنید ببینید که جواب چطوری خب گفتیم سر و مرگ داریم مرگ نامحسوس که در مورد است که اون چیز افسورتگی ارتباط فرد رو ارتباط معرفتی رو با بیرون قطع میکنه. میشه مثل مرده متحرک یعنی میره میاد ولی همون سمون امیونه و یک مرگ فیزیکی داریم که قلب از کار میسته مثلا جواز دفن صادر میشه یک مرگ قطعی داریم مرگ قطعی حالا ماجره آیا زمانی که جواز دفن صادر میشه فرد مرده میتونیم به طور قطعی کسی میتونه به طور قطعی بگه این مرده درسته به طور قطعی نمیتونیم بگیم مرده چون صد تریلیون سلول هنوز زنده است فقط پمپاجه خوب خون و رسوندن اکسیژن و قند و اینها قطع شده و کالبود ذهنی زنده است کالبود اختری زنده است کالبود روانی هم هنوز زنده است حالا سایر عیزا هم کارا بمانند اینا هنوز زنده فقط پمپاژ قلب قطع شده اینا هنوز زنده و تا زمانی که کالبود اختری نمیره مرگ قطعی نیست احتمال زنده شدن وجود داره بعد از دو روز، بعد از سه روز، بعد از یک روز، بعد از چند ساعت تو سردخانه، تو این تو اونور این در طول تاریخ و در چی در هر روز در دنیا اتفاق میفته مطالبه اینکه تعریف دقیقی از مرگ وجود نداره به, به این تعدادی که برمیگردن در اقلیت هستند طبیعتا راयत چیزهای دیگه مقدور نبوده خب حالا هنوز نمیدونم ولی شاید این پیشرفتویی که الان داره رخ میده همین عکس برداری و اینها اینها نشون در آینده احتمال زیاد قبل از به خاک سپاری عکس برداری اکسپرداری کرلیان همینه که الان گفتم توی دنیا علم اومده این کار انجام خواهد شد و بعدا یعنی تا زمانی که روی اون برداری قطعی نشه جواز دف صادر نشه حالا این از نظر بسیلا ما خودمون تعریف بکنیم بعد از اینه که کاربود اختری مرد کاربود روانی میمیره و بعد از اون کاربود ذهنی میره زندگی رو ادامه بده یعنی در زندگی بعدی بعد از اینکه که جذب تموم شد جس تموم شد کالبود ذهنی به زندگی ادامه خواهد داد کسانی که تجربه مرگ و رفت و برگشت میدونن که بعد خودشون میبینن جسدشون رو میبینن تمام کارهایی رو که روشون انجام میشه اتباقا ما صبح که از دوستان دست صبحمون تجربه مردن رو داشته در اتاق عمل و, و بعد برگشتشو و و کنم خدمتتون که با فرادرمانی اونا روشون کار شده مشکلات و زایه‌اتی رو که مونده بوده خوشبختانه رفت شده بوده گزارش دقیقی داشتن که به سلا چجور اتاق عمل رو مشاهده می‌کردند، و شوک دادن، چیکار کردند برای برگشت کاری که شده همه اینا رو در واقع توضیح می‌دادن یا این گزارش عمومیه کسانی که مردن و برگشتن این گزارش رو به اصلاح دارن که تمام مشاهدات از طریق ذهن کاملا انجام میشه و وقتی حالت قشنگی هم که وجود داره اینم در حال هاشی خدمتون گفته باشم. بنابراین اون چیزی رو که ما میگیم احزار کردیم روح احزار میکنیم اینا اون روح نیست کالبود ذهنیه و روح اصلا یک تعریف دیگه ای داره این کالبود ذهنیه که بعد از مرک به زندگی ادامه میکنه خب حالا زمانی که جان رو نقش حادی داره در دوره های بعد با هم صحبت بکنیم جایی که میگه وید سلون اکه انه رو قر روحو من امر ربی و ما اوتیتن اوتیتن من العلم الا غلیلن اون یک ماجرهای دیگه, دیگه داره الان اون یه نقشی داره زندگی بعد یه نقشی دیگه داره در همچوری حادیه و به سمت بالا کارهای رو انجام میده حالا در دوره های دیگه رو خب. در مورد مرگ مغزی دوباره امکان برگشت وجود داره توجه می کنید امکان برگشت وجود داره فقط مسئله که وجود داره اینه که در اینجا سیستم هایی از سیستم مدیریت خارج شده ولی احتمال برگشت وجود داره یعنی ما حتی روی مرده الان اینو میخوام خواهم خدمتون بکنم حتی روی مرده بعد از این که شک دادن، شک قلبی دادن، چی دادن زنده نشده و ما اونجا حضور داریم، هنوز بعدش امکان داره که ما هم بگیریم و اون شکی که شما اونجا روی افراد توضیح دادیم کمایی ها، اقمایی ها، مرگ مغزی ها، تمام ها اعمال میشه روی در واقع یک فرد هم که است قلبی داره الان یا هر مسئله دیگه مثلا زنده تلقی نمیشه از نظر فیزیکال هنوز جا داره شک کالبود اختری رو خب شک کالبود اختری رو روش اعمال بشه توجه میکنید هنوز این جا داره که این کار صورت بگیره روش حالا تا در آینده نمیدونم نزدیک با این پیشرفت ها با این اکس هایی که شده بشه اون مرگ قطعی رو تعریف بکنن و از طریق اون اشب بداره نشون میدن که کاو دختره مرده است یا هنوز زنده است از این طریق اما به طور کلی ما وقتی میگیم که به اصطلاح قمایا یا قمایا مرگ مغزیم دوام چی تمام این ها یعنی اینه که ما امید هنوز داریم امید قطع نشده که به بشه این سیستم به چرخه در بیاد این ارتباطی که قطع شده دوباره بتونه برقرار بشه. قطعی ارتباط در مورد این مسئله عمداً زمانی اتفاق میفته که ارتباط ذهن و مغز قطع میشه. یعنی عمداً زمانیش که ارتباط ذهن و مغز قطع شده، مغز سیستم اوتوماسیون رو انجام میده. از کار نیفتاده مغز. اگر توجه بکنید مغز داره سیستم اعمال حیاتی بدن و کنترل فشار خون دامچی چی اینا رو داره چیکار میکنه؟ انجام میده سیستم اصلا مغز کارش اوتوماسیونه کار اولش کار دومش کار و بخش دومش اینه که داره در واقع این تبدیل از اینجا به اونجا رو چیکار میکنه؟ انجام میده و اعمال شعوری حیات رو اعمال شعوری حیات رو آشکار میکنه اگر این ارتباط این با اون قطع بشه میشه صرفا کنترل اوتوماسیون بدن یعنی چرخ بدن توی این سیستم سیستم اوتوماسیون سیستم مدار فرمان برق برق مغز داره انجام میشه اعمالشو داره انجام میده تمام بخشها دارن به کارشون ادامه میدن قلب داره میزنه نفس هست عمل نمیدونم حزم حتی هست این هست اون ها تمام سیستم اوتوماسیون بدن هست. فقط در مرگ مغزی ذهن و مغز ارتباطشون قطه. مثلا عقب مانده ذهنی کسی که ارتباط ذهنش خوب ارتباط ذهن و مغزش قطعه. و بعد اگر در ارتباط ذهن ارتباطش رو قطع کنه افراد یه شک میشن. تأثیر ذهن بر روی در واقع جسم مسائلی رو میاره و اگر ذهن ارتباطش رو قطع بکنه مثلا حیوانات زن ذهنشون این بخشا رو نداره فقط اینو داره خب همشون تقریبا یه شکلا درسته یا نه اما در مورد انسان اگر انسان ارتباط ذهنش قطع بشه مثلا عقب ماندگی ذهنی برمیگردن به یک بیس اولیه همشون چی یه شکل یعنی زمینه شکلی مشخصی دارن لذا ما بحثی داریم که حالا تو دوره بعدم با هم صحبت میکنیم پیوند کاربود ذهنی کاربود روانی کاربود اختری اگر اینها با هم فازی نداشت باشن در جسم ما مثلا جنون آنی رخ میده جنون آنی تعریفش قطع ذهن و روان خب ذهن و روان از جسمه ذهن و روان از جسم قطع بشن جنون آنی رخ میده ارتباع ترم بعد تعریب میکنیم بنابراین ارتباط خب اینه نظر دنیای علم هنوز چون بحث کاربود ذهنی هنوز اینه که ذهن جد مغزه یا خارج از مغزه این خوب بحث دیگه چون دنیای علم بحث ذهن خود خود مغز میدونه مغز و نمیدونه چیز دیگه میدونه همجوری میگیم زن چیه میگه مغزه میگه مغز چیه میگه ذهن خوب این یه سیکلیه هر جایی که کم میاد بحث به زن ارتباط داده میشه هر جایی میخوایم بگیم خب چیه برمیگردیم به مغز لذا تا زمانی که ما این مسئله جدایی ذهن و مغز رو در واقع بهش نرسیم خیلی از قضایا قابل تعریف نیست مثل جنون آنی مثل نمیدونم همین مرگ مغزی مثل تمام این حالید لذا ما تو ارتباطی که اگر به یک نفر بدیم که دوچار مرگ مغزیه میخواد چیکار کنه میخواد پیوند ذهن و مغز رو برقرار کنه خب از نظر علمی همین پیوندی نمیشه ولی از نظر بوشمندی امکان داره ام این مسئله میشه مثلا ما در مورد عقب ماندگی ذهنی عزم کردم من چند مورد که تعجبی داشتم خونمادارشون گزارش دادن یه دفعه دیدیم که یه چیزی ایجاد شده حالا بعضی ها توی این پیوند یه مسئله دیگه هم پیش میاد بعضی توی این پیوند خب میخواب با مغز پیوند خوره مغزم اگه اشکال داشته باشه این پیوند چیه؟ انجام مغز نمیتونه ترجمه کنه یعنی اینجا باید این دتکتوره ما این دتکتوره بتونه کار کنه اگر این اشکال داشته باشه این پیوند نمیشه بنابراین تا یه جایشو پیوند میدیم در بیش ترصد فورا می بینیم که تاثیرات ظاهر شد یه جایی به بعدش می بینیم این پیونده به علت نقاعصی حالا نقاعص کروموزومیه نقاعصی دارم فیلا هرچی هست این دتکتوره دیگه جواب ظاهرا نمیده. نمیدونیم اگه ادامه بدیم چی میشه. ها من اینم خدمتون بگم چون ما در مورد نق... نقاعص ژنتیکی تجربه داشتیم که اصلا تغییر ژن پیش اومده مثل در مورد دوشن خب در مورد دوشن تجربه رو داشتیم در چند مورد که اصلا تغییر پیش اومده یعنی آنزیم‌ها و آزمون شات و نمی‌دونم این حرفا در مورد دو تا برادر دو قلوی ایکی که یکیشون 8 ساله بوده یکیشون 14 ساله در مورد دو تاشون مسئله منقطع شده کوچیکه دیگه مبتلا نشد به دوشن دوشن تحلیل ازولانی اسکلر دیسترافیه ازولانی خب حالا این ژنتیک هم هست یک موردش هم در ده سال قبل، در مورد ده سال قبل دیگه برادر کوچیک مبتلا نشد در حال که هشت سالگی شروع این قضیه است در مورد بیماره دوشن خب حالا بحث یا مباحثی هست که این مباحث رو اگر ما ندونیم باید بگیم نمیشه نمیشه نمیشه ولی وقتی وارد محصه میشیم میبینیم که نه حالا نمیگیم ساده. یک درصد میگیم که پس یک درصد امکان شدنی که اون 17 درصد شد یه درصد این خیلی خوبه درست شد بنابر این یک موضوع هست که من خدمت همه دوستان میگم که بریم سراغ تجربه بیایم بگیم هیچی نمیدونیم بهتره بگیم بابا ما اصلا چیزی نمیدونیم بریم تجربه کنیم اگه تجربه جواب داد اون چیزی که واقعیت داشته باشه علمه چه ما جوابش چه ما دلیلش رو بدونیم چه دلیلشو؟ ندونیم بعد علم اینه که بیاد رابطه بین اون واقعیت رو چگاه کنه؟ واقعیتها رو کشف بکنه شرایی ها رو کشف بکنه اول تجربه بکنیم بعدا بیایم ببینیم که خوالا چرا شد؟ چرا میشه؟ اونو میتونیم بریم بعد بیفتیم بیافتیم دنبالش بیانیم چرا میشه اما اگر از اول تجربه نکردیم بگیم چرا میشه؟ چطور میشه؟ مگه میشه؟ خب عقب میفتیم عقب میفتیم عقب میوفتیم پس اول علوم تجربه اینه که اول تجربه تجارب جمع کنیم بعد رابطه بین تجاربمونو کشفش کنیم خب بدونیم خیلی چیزا هست که ما نمیدونیم ما هنوز علم ما نسبت به هستی قطره ای در مقابل همه اقیانوس انسان به این سادگی نیست ماجرای انسان خیلی پیچیدگی ها داره بنابراین خودمون رو محدود نکنیم به علممون به دانسته هامون بیایم اول بریم تجربه بکنیم اگر جواب گرفتیم حالا میوفتیم دومال چرایی هاش چرا اینجوری شد چرا اونجور شد خب این پس در این خصوص جه آیا کار سلسله مراتب دارم یا یکی زیر دیگریه ببینید سلسله مراتب مثلا اینجوری، الان دیدیم که این باید بمیره تا این بمیره، بعد این دیگه زندگی میکنه به زندگی ادامه میده، یعنی این جسمی افته، این میره ادامه میده اطلاعات, اطلاعات و آرشیو میبره به زندگی ادامه میده الان شما روی رو ازدار کنید، اصطلاحاً که همین ازدارش کردید تمام اطلاعاتشو داره میفهمه اسمش چیه، میدونه چجوری مرده، میدونه چی بوده چی بوده ایم دامپر همه اطلاعاتش رو داره. در حالی که مغزمون زیر پوسیده رفته پیکارش. این یعنی آدمی یعنی اگر آ... آدمی باشه کارگری جسمی و ببینید این بخشی رو که ما آوردیم بخش غیر فیزیکال یعنی یه بخش کوچیکی از قسمت غیر فیزیکال وجود ماست. خب یعنی جسم ما از این تو هیچی نیست جسم ما حالا این کنار اینم بهش اضافه باید اینم بهش اضافه بشه این بخش غیر فیزیکال ماست اینها که اینجا اومده حالا قسمت مرکزیش هم هفته دیگه مورد بررسی قرار میدیم روان و نمیدونم این حرفا رو در جلسات بعدون مورد بررسی قرار میدیم اینها تازه بخش های غیر فیزیکاله تازه جزئی از بخش های غیر فیزیکال ما تعداد کاربوتاک خیلی زیاده خب؟ خیلی زیاده حالا رو درگیر نکنیم پیلا که خیلی مهمه در واقع اینا کجا؟ بعد از مرک بعد از مرک میشه لا مکان یعنی دیگه به مکان نیاز نداره هر جای در آن باید هر جای میتونه حاضر باشه خب بابا همونه که استلاحاً گفته میشه روح منطقه روح نیست اونه که میگیم روح کالبود ذهنی روح یه چیز دیگه است در واقع زندگی بعدی حالا الان بحثی که چند افر توی احزار روح اینا تجربه دارن تو جمعمون خوب ما آیا, آیا این اطلاعات موجود بود یا نبود بله خب ببینید که موجوده بنابراین اون چیزی رو که ادامه ادامه میده به زندگی این بخش کالبود ذهنی هست که میره در لا مکانی یعنی زمان داره ولی مکان نیاز نداره و بعد از اون میره به لا مکان لا زمان یعنی نه مکان نه زمان و همینجوری بعد لا مکان لا زمان لا تضاد یعنی انتهای قضیه و قبل از این هم جایی که بودیم یه بودی از اینجا بیشتر داشته حالا بماند اینا وارد بحثایی چیز نشیم اما برگردیم یه تو وقتی که داریم اگر چیز در راجب پولاریتی هم یه توضیح هم بدم خدمتون جانم شعاع این سه تا کال بوت اطراف ببینید تاون تا که الان عکس میگیرن خب عکس حالا با یک الان 50 سال بیشتر از 50 55 ساله که بر اساس یه اتفاقی معنس کلیان از بلوک شرق تونس عکسی بگیره که حالا رو نشون داده فعلا محدوده ای رو نشون میده که اینقدر فرضن اینقدر رو میگیره ولی این نیست یعنی بعدها می بینن که این ماجرا مفصل از این حرف است درست شد یا نه و حتی بخشی داریم که تو همدیگه می غلطیم و روح جمعی که گفته میشه با اینها ثابت شده ما با همین بخش اشتراکی داریم روح جمعینا در انتها یک ماجرای عجیب و باورنکردنی خوابیده که ولش کنیم واردش نشیم فیلن, فیلن <تصفح> خب بذاریم بریم سراغ یک بحثی که کدومشونه اون... اونی که عکس میگیره؟ اونی که عکس میگیره؟ مخلوط اینا که نمیدونن که الان از چی دارن عکس میگیرن فقط میدونن که ما یه حاله داریم خب اسم این حاله هم نمیدونم دارم... نمیدونم چیه آ... اختری و آسترال بادی در واقع نامگذاری کردن به طور کلی ولی مخلوطی دارن یه چیزی رو میگیرن که تفکیر که ندارن که حنی فقط یه واقعیتی رو برخورد کردن و تو این واقعیت مراکز انرژی چاکرا و اینا هم توش چیه داره میافته برای اولین بار برای چند هزار سال دنیای علم پذیرفته که ما مبدل‌های انرژی داریم البته غیر از ایران ها غیر از ایران شما معمولا فقط 100 سال قبل هستیم خب ان در قرن آتی نسل بعدی متوجه میشن که ما مبدلهای انرژی داریم کانالهای چاردرگانهی نمیدونم چی داریم مریدین داریم و ببینید این بحث مثلا در تب سوزنی تب الکترونیک الکتروت هایی خب رو پوست بدن اگر تکون بخورن یه نقاطی رو برمیخورن این نقاط اختلاف پتانسیل الکتریکی و ذریع به هدایت متفاوتی با اطرافیان دارند. حالا این نقاط رو پیدا میکنند میاد, میاد میاد در صد تا سر بدن دنبال میکنند اینا رو که به هم بحث میکنند میرن که اینا همون مریدین است که 4-5 سال قبل اکسش وجود داره یعنی چیزش وجود داره و طب سوزنی خب لذا این طب سوزنی الکترونی بعد در مورد یه توضیح کوتاه هم من راجب پولاریتی بدم جانم نه نه نه اصلا این جنسش آگاهیه آگاهی قابل عکس برداری قابل شناسایی، کیفیت، کمیت نیست از هوش نمیشه عکس گرفت، از فکر نمیشه اکس گرفت ولی آثارش، انواج، نمیدونه، آلفا، بیتا، فلا اینا رو میشه اثر مغزی چون ببینید ببینید، ببینید اولا هیچ چیزی تحقیق اینجوری فعلا نداریم، نمی‌دونیم. خب ولی ببینید توی جه مغز مثلا یک مدار فرمان الکتریکه این مدار فرمان مثلا جریان که داشته باشیم هل حوشش چی داریم؟ حوزه داریم که همیلا یعنی راجعه پولاریتی هم میخوام صحبت کنیم همینه حالا این مغز ما اگر سیستم الکتریکه حوزه هایی رو تشکیل میدن که قابل ثبت و ضبط و بررسیه لذا شما برمیخونید به امواج آلفا و بتا و غیره و این آ مغزی رو نشون میده مثلا قلب یه سیستم الکتریکه جریان برق وصل میشه خب هم میاد ول میکنه واز میشه خب این با الکترودهای زمانی که جریان برق وصل میشه یا به نقاطی که وصل میشه قابل چیه ثبت و ضبط لذا نموداراشو میتونیم بکشیم خب این به این صورته ولی شما هوش رو نمیتونید عکس بگیریم اصلا کمیت نداره کیفیت نداره اینکه مثلا میگیم آی کیوشن قده در واقع هوش نیست که این این به سلا قابلیت تشخیص، قابلیت بیاد به قابلیت بیاد آوریه میدون ایناست ما میگیم که به فزن هوش خود هوش و مگه کسی میشه به خلاقیت یه نفر هوش یه نفر رو اندازه گرفت. خب در مورد به سلا پولاریتی یک سلول یا یک فرد به اصطلاح این سلول یه حوزه پولاریتی داره چرا حوزه داره بله برای اینکه در این سلول ما تبادل یونی و الکترونی داریم یعنی جریان الکتریک داریم ببینید بدن ما سیستمش الکتریک همش یعنی در واقع یه ژنراتور برقه قلبمون برقیه مغزمون برقیه میدونم تمام سیستم بدنمون مثلا هر جا اصف کار میکنه با برق چیز میکنه هم میاد روخ باز میشه روده باز میشه مثل اکشویتور برقیه خب اکشویتور های برقیه باز میکنه بسته میکنه باز میکنه بسته میکنه لذا جریان هدایت خون و نمیدونم مواد قضایی همین رو سیستم بدن ما الکتریکیه کارخونه عظیم الکتریکی مغزمون هم یک مدار فرمانه برق که این هدایت این سیستم رو به اوت داره درست شد؟ حالا وقتی که یک سلول جریان برق داره جریان که داشت چی میشه؟ حوزه داره حالا البته, البته ما یه چیزای دیگه هم داریم که شما به در دور شیش خب در دور شیش میاد میبینید که یه جریان ناشناخته دیگه هم داریم خب که ما الکترون ها و یون های آزاد میدیم یا از هوا میگیریم به زمین میدیم یا از زمین میگیریم به هوا میدیم و این خودش ناشناخته است در دنیای علم ولی تو دوره 6 تو ارتباط این جریان ها رو متوجه میشن افراد میمتوجه میشن که اینجوریه حتی شارژ میشن شارژ میشن چیز میشن کلن تجربه میکنن خب این نظر دنیای علم ناشناخته یعنی این مثل یک آهنربای، الکتریکی بعد از اینه که تازه حالا وقتی اون دو سر مثبت و منفی پیدا کردیم یه حوزه دیگه هم در واقع تشکیل میشه. درست شد؟ حالا این حوزه که تشکیل میشه بدن ما هم در مجموعه مجموعه ساترلی اون سلول حوزه داره. درست شد تا اینجاش؟ خب این حوزه در چند دقیقه قبل داره که از دانشگاه آمریکا اندازه گیری شد، نقشه برداری شد. که دیدن که مثلا این ور مثبت، این ور منفیه. این ور مثبت، این ور منفیه. یعنی قطبیت داره. بعد تیکه تیکه مثبت، منفی، مثبت، منفی، صفر، مثبت، منفی، نمیدونم، مثبت، منفی، مثبت، منفی، صفر، همیجوری اینا نقشه برداری شد. درست شد یا نه؟ بعد متوجه شدن که با این حساب اختلالات یونی و الکترونی حالا یا اختلافات الکتریک میتونه باعث اختلال در حوزه پولاریتی باشه لذا زمانی که ما دستمونو به سمت ببریم روی کله یه نفر دست ما یه حوزه داره خب بدن اونم یه حوزه داره وقتی ما اینو میبریم جلو این دو تا حوزه در هم چیکار میکنه؟ تداخل میکنه تداخل در این حوزه اساس ژنراتور برق ما در حوزه دست ببریم در جریان چی میشه جریان ایجاد میشه اساس ژنراتور که ما حوزه ایجاد میکنیم یه چیزی رو تو این حوزه بچرخونیم جریان برقه ما این حوزه رو تحت تاثیر و شوکی قرار بدیم اینجا جریان ایجاد میشه بنابراین تداخل دستم با حوزه ایشون یه شوکه ای ایجاد میکنه و اونم من اینو توضیح بدم خب تا اینجا گرفتین دیگه من اگر دستمون نزدیک بکنم این تداخل این دوتا حوزه تو هم باعث یه شک به ایشون میشه بعد تبادل یونی و الکترونی رو چگاه میکنه جریان الکتریک رو میکنه را میندازه حالا اگر مشکلی ایشون داشته باشه که به واسطه ادم تعادل یونی و الکترونی باشه برطرف میشه یعنی یک در 200 بین دیویست نفر یه نفر ممکنه تب عدم تبادل یونی و الکترونی داشته داشته باشه 300 نفر رو چیز کنیم یه نفر ممکنه عدم تعادل یونی و الکترونی داشته باشه خوب یعنی یک رشته 100 درصد علمی که در دانشگاه های در تمام دنیا این رشته انرژی درمانی تدریس میشه و دارن کماؤکان روش کار میکنن و داره وسلا و, و لاخره ابعاد مختلف این قضیه رو کار میشه خلاصه اینطوری من خدمتون بگم خب یک مسئله پیش میاد که چرا تا حوزه حوضه پولاریتی ما به هم میخوره آه، آه، یه سؤالی دیگه بله ببینید ما با زندگی که برای خودمون درست کردیم و در این زندگی الان به عنوان مثال ساختمانی زندگی میکنیم که استرادچرهای فلزی داره میدونید یک فلز حول خودش یک حوزه رو چیکام میکنه؟ ایجاد میکنه این ستون در اینجا الان یه حوزه دور خودش داره درسته؟ منم یه حوزه دارم من الان به این ستون نزدیک میشم چی میشه؟ این حوزه ما با هم تداخل میکنه خب من دور میشم اینجا که میرسم یه حوزه دیگه پیدا میکنم دوباره میرسم به اون ستون دوباره حوزه منو چیکار میکنه؟ به هم میزنه حالا اینجا دارم راه میرم تو سخت تیرچه داریم چی داریم؟ فلز داریم؟ اینام حوزه داره چی داره؟ من مدام در معرض تغییر حوزه فیزیکی هستم این سلول مونده معطل که بالاخره این تبادله این نامنظمه مثل نوسانات جریان برقی که ما به بعضی موقعات داریم که قدیم ترانس میذاشتن اونها که این نوسانات چیکار کنه بگیره که لوازم برقی اینا دچار اختلالات نشن بعضی موقعا میسوزن یعنی لوازم برقی توی این نوسانات میسوزن حالا بدن ما در معرض نوسانات الکتریک قرار میگیره نوسانات تبادلیونی قرار میگیره هی hey, اینجا هی hey, اینجا، هی فلان هی ورا پایین میریم بالا و به اصطلاح ما با یک آلودگی روبرو هستیم که میتونیم اسمشو بذاریم PP، پی, پی. پولاریتی پولوشیو آلودگی پولاریتی حالا ما این داریم میگیم آلودگی سود آلودگی فلان قابل ازینی که قابل ازینی که ما یک آلودگی داریم که خودمون خبر نداریم و به سلا الان انجام میرید میشینید تو خودرو خودرو ما یک استراکچر فلزی داره ساختمان فلزی داره خب خودش یه حوزه تشکیل میده ما میشینیم تو اون خودرومون حوزه ما با حوزه اون چی میشه تغییر میکنه سیستم بدن ما همش در نوسانه بعد یه ساعت نیم ساعت داره. بعد این پایین بعد بیرونجا بعد اونجا بعد فلان بعد بسیار فلا. همینجوری این سیستم بدن ما مثل نوسانه با نوسان برقی در چیز هست که قبلنها قدیم نوسان نوسانات برق زیادی بود و همیشه در مرض سختگی سختگی چیز رو اینا داد حتی من که یادم نمیاد ولی دوستان میتونن که خب اینجا چیزایی در واقع بوده خب جان. ما الان الان من چند تا چیز رو خدمتون بگم خوچماندی خب یک به اصطلاح پولاریتی پولوشن یه آلودگی دیگه, دیگه تو این رابطه ویو پولوشن امواجی که روز به روز الان داره تعدادش چی میشه بیشتر،, بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر میشه حالا این امواج از امواج رادیو تلویزیونی نمیدونم ماکروویو نمیدونم چیزای مختلف و از کنم این ورا قضیه گوشی های همراه که در واقع دارن حرارت جب هم میبرن بالا غیر از پاید گرین هاوس پاید گلخانه این که CO و داریم ایجاد میکنیم گاز کربونی که دیوکسید کربون اینا رو داریم ایجاد میکنیم حرارت اینا حرارت جب و نگه میداره داریم با انواج مختلف حرارت جب رو میبریم بالا یخهای قطبی هم دارن آب میشن طوفان نو هم در راه یعنی اینم مجدگانی طوفان نو هم در راه برای اینکه توده عظیمی در قطب شمال و جنوب یخ هزاران سال طلمبار شده برای امروز که حالا دارن چیک چیک چیک چیک اینا داره آب میشه و با اجازهتون زمین زیر آب خوب دیگه خب این عظیم مسئله حالا اجازه بدین اجازه بدین خب، این در واقع خب، حالا ما میگیم آلودگی هوا آلودگی هنوز خبر نداریم که چه خبره خب، و ما در معرض چه خطراتی قرار داریم خب، از اون طرف قضیه در واقع اینایی که داره میاد مسئولی هم هست که تلفن همراه و غیره دوباره این یک برای خودش میدان داره و ما که اونو استفاده میکنیم یا حالا تلویزیون یا چیزای مختلف در حوزه ما ایجاد تغییر میکنه حوزه ما تغییر میکنه در عمل سلول ایجاد تغییر میکنه و ممکنه که این تغییرات نمیدونم مثبت منفی نمیدونم خلاصه متاسیون و جهشی رو ایجاد بکنه یا باعث تحلیلش بره یا باعث تکثیرش خلاصه تحریکی رو بالاخره در نهایت خواهد داشت و ما جان ببینید سرطان کنسر در واقع رشد بیرویه است دیگه تحریک دیگه درسته؟ رشد بیرویه است خب خیلی عوامل میتونه در این رشد بیرویه نقش داشته باشه در اشتباهی ذهن و در جلسه قبلمون مورد بررسی قرار دادیم این طرف قضیه هم مسائل محیطی رو هم داریم مورد بررسی قرار میدیم و همه اینها الان نقش داره و میبینیم که درصد قابل توجهی در دنیا گرفتار شده مثلا شما میفرون کانسر کانسر دیگه شده یک ماجرای عام و که در یک سطح و بسیار گسترده باهاش درگیر هست درسته خب از این مسئله هم میتونه در اون نقشی داشته باشه خب جانم چه رو اگر که چشم منظورتون ببینید اینجا بحث حوزه پولاریتیه این حوزه اینم حوزه خب دیگه چشم حوزه خاصی نداره حوزهش خیلی محدوده یا حوزه کلیه ماست اونه که شما منظورتون از چشم کاری که از طریق چشم بشه کرد نه اونا یه ماجرای هست ربطی به حوزه پولاریتی نداره لذا لذا ببینید مثلا فرض کنید که اگر دو هزار سال پیش عیسی مسیح علیه السلام دست کشیده برای بیماری خوب شده خب دست کشیده خوب شده گفتیم که معجزه شده ولی فردا میبینیم که این از یک قاعده و قانونمندی در واقع پیروی شده. خیلی از کارهایی رو که الان داریم انجام میدیم خب اینها ساختارش اینجوری خدا هوشمندی قانون اعداد جان اصلی از اعداد ساخته شده، جان اصلی از قانون ساخته شده، جان اصلی از هوشمندی ساخته شده، جان اصلی خداست. یعنی خودش بعد تجلی خداست. در واقع بنابراین در سعد و ستوی که میخوایم صحبت کنیم میتونه همه چیز با قانون قابل بیان باشه همه چیز با عدت قابل بیان باشه خب حالا تا اینکه ما از کدوم زاویه میخوایم نگاه بکنیم از زاویه هوشمندی نگاه میکنیم میکیم آه، چی شد ولی وقتی میمکو زاویه قانون نگاه میکنیم میدونیم که اینم قانون بند بوده اینم قانون داره حوشمندی هم کار باش دوباره هیچ چیزی در هستی خارج از قاعده و قانون نیست. ما هر جایی رو که متوجه نشدیم گفتیم متافیزیک. هرجدی با عقل ماجور در ریمنده گفتیم معجزه. معجزه شد. خب در واقع اینه ولی روز به روز داره میایم الان 50 سال پیش اگر که یک نقاشی در نقاشی خودش یه حالایی میذاش جلو کله یک آدم بعضا حالا خاصی تو این نقاشیایی که هست می گفتیم این آدم است. امروز که علم اومده اینو ثابت کرده اون چیزی که دیروز خرافی بود امروز چیه؟ امروز علمیه طب سوزنیه که دیروز نمیدونم خرافی بود شیادی بود تا سه دهه قبل شیادی بود امروز علمه یعنی که باید توضیح بدن چرا این نقطه اختلاف پتانسیلش با سایر نقاط برق داره چرا؟ دیروز گوشانی کلمه های ادیس خود خودتون راحت امروز من باید ببینم این 14 تا مریدیان کارشون چیه چرا این نقاط با هم فرق داره این نقاط کارش چیه و خیلی مسائل دیگه بعد می‌بینی اون چیزی که نمیدونم خاصیت ندام حالا در متافیزیک بوده نمیدونم خرافی محسوب می‌شده امروز براش دلیل میشه پیدا بشه ولی ما یه نتیجه میگیریم اون چیزی که واقعیت داره حتما یه چیزی پشتش خوابیده چه دلیلش رو بدونیم چه دلیلش رو ندونیم خب بفرمایید چند دقیقه وقت داریم بفرمایده بفرمایید. ارتباط این بخش با هیچی اون یه مسئله بود این مسئله دیگه بود که پولاریتی درمانی به انرژی درمانی از طریق پولاریتی چی بود این فقط جداگانه برای شناخت بیشتر, بیشتر بود همین چیز جانم جانم شما گفتین که این به هم ریختگی به علت زندگی جدید وجود داره هلی. برای تنظیم بهتر این خب راههایی هم باید وجود داشته باشه راهی که راهی که وجود داره اینه که انسان از لذات جدا بشه <laughs> راهی که وجود داره اینه که تلفن همراه رو پرتش کنیم دور رای که وجود داره اینه که بگیم با با هیچ سیستم مخابراتی نمیخوایم رای که وجود داره برگشت به زندگی بله است که ببینید یه جریاناتی در طول تاریخ اجازه بدین یه جریاناتی در طول تاریخ یعنی به خدمت تاریخ با ساخته شدن اولین چرخ مخالفت داشتن الان معلوم میشه که چند هزار سال پیش بصیرت داشتن که میدونه زن این چرخ ساخته بشه و به چرخ در بیاد ما به چه جایی میرسیم و به اینجا خواهیم رسید که از زمین و آسمان و همه چیز در معرض خطر قرار گرفتیم و یکی از دلایل اینه که مجبور هستیم رو بیاریم به روش مدرن برای تنظیماتی است که به اصطلاح تنظیماتی که بهش نیاز داریم الان مثلا کسی که مثلا خلبانا خلبانا تو وقتی که پرواز دارن میکنن از این مسئله محرومن لذا تو پرواز خستگی بیشتر از روی زمینه و کسی که در ارتباط با زمین قرار میگیره خب الان این بالا که در ارتفاع هست یک ساعت این بالا که باز زمین در ارتباط نباشی معادل سه چهار ساعت خوب روز زمین بودنه توجه می کنید تو اسکای فضایی اینها موزلات آینده بشره اسم اینو گذاشتیم بسلک کاندکتیویتی پولوشن و این هم یک چیزی که اصلا خبر نداریم ازش و همه ما در معرض حالا هستیم که الان در ترمشی صحبت بکنیم اما ما بدونیم که از این مسائل استفاده کنیم خودمونو قادریم با ارتباطات شارج, شارج نگه داریم توجه میکنید لذا از این طریقه که نیاز داریم به جبران یه سری مسائل از طرق دیگه ساقی ها جامع دمادم ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود همه رو به خدا می خدا نگهدار. خیلی مشکل ممنون سپاسگزار